درست دانش برنامه از انجمن استادان و, و پژوهشگران ایدانی همبر به کل مثلا قرب ایران، شرق ایران، بخش کوردها، بخش آذری‌ها، بخش عرب‌ها، بخش ترکمن‌ها همین جور به ابعاد مختلف نگاه بکنید ویژگی‌های پاسخگویی به نیازهای روزمره و معماری که به وجود آوردند فرشی رو که می‌بافن ما فرشامون خیلی قشنگ اتفاقاً یک ویژگی‌های فرهنگی خرد فرهنگی زیادی داره فرش کاشی داریم، فرش اصفهانی داریم، فرش طرهای تر عبریز داریم. اینا همه انواع در واقع ویژگی های فرهنگی هستن آنچه که مهمه این هستش که وقتی میگن فرهنگ ایرانی چه ویژگی اون فرهنگ ایرانی رو از فرهنگ های دیگر جدا میکنه این مسئله خب مسئله زایی زی... مسئله خیلی پیچیدهی بوده و برای اینکه من حالا به این بپردازم باید ابتداعا بگم که اصلا چرا اصلاً این بحث فرهنگ ایرانی امروز مطرح هستش؟ فرهنگ ایرانی که ما داریم میگیم عملاً از زمان تشکیل دولت دولت ملت جدید اصلا مطرح میشه وقتی که کشور ما مرزبندیش تعیین میشه و که نه تنها کشور ما کشور های اروپایی هم مرزبندی های جدید به وجود میاد و جغرافی های سیاسی تعیین میشه در کشورها دولت تسییس میشه این دولت عادتا یک سلسل قواعد و ضوابط اجتماعی رو به خصوص در حوزه رفتارهای اجتماعی از آزاوی مدنی میخواد بیا تنظیم بکنه قوانین مدنی رورزه براس چ چه میریز؟ بر اس عرفی که در اون منطقه برقرار بوده بر اساس دینی که بر اون جامعه حاکم بوده بر اساس تاریخی که اون جامعه داشته به عبارت دیگه من میخوام بگم ویژگی های فرهنگی اغلب فرهنگ ها یکیش بود زبان هست چه زبانی رو صحبت میکنن چه زبان مشترکی که به صورت عمومی در همه جا هست یکی مسئله یه جغرافی هست جغرافی رو که با هم سحیم هستن سرزمین رو که با هم در اون زندگی میکنن با هم در اونجا به دنیا آمدن دلبستگی های عاطفی و دلبستگی های خانوادگی مالی ارز کنم شغلی پیدا کردن یکی مسئله خود تاریخه تجربه است که این انسان ها با هم در یک دوره ها و مختلف تاریخی با همدیگه داشتند داشتن و این تجربه ها را از پدران خودشون و مادران خودشون به فرزندان خودشون همچنان انتقال دادن امروز ببینید یهودیان جهان مسئله هولکاست را حتی یهودی که اصلا در اون دوره زندگی نمیکرده یا تازه به دنیا آمده و مسئله هولکاست جزی از تاریخش جزوی از هویت خودش میدونه جزی از فرهنگ خودش می دونه و همین نسبت سیاهان آمریکا مسئله بردگی رو به عنوان بخشی از تاریخ خودشون به عنوان میراث تاریخی خودشون همچنان دوش خودشون دارن احساس میکنن ضربه هاش رو و فشارش رو و تظلمی رو که بهشون به وجود اومد به همون نسبت خود ما ایرانی مسئله تجربه تاریخیمون با بیگانگان که همواره به کشور ما حمله کردن این حمله های متعدد تاریخی اثرات زیادی در رفتار ما، نگاه ما خصایص حتی شخصیتی ما گذاشته مثلا یکی از ویژگی ها البته اینا رو میتونم مطرح کنیم زیر سوال مسل انگیز بودنشو یا زیر سوال بودنشو یکی از ویژگی هایی که راجع به ایرانیان این روزها زیاد صحبت میشه میگن ما خیلی توته اندیش هستیم همه چی رو بر اساس تئوری توته نگاه میکنیم خب این ناشی از همون عدم اعتمادی است که ما نسبت به تمام این حمله ها و بیگانگان داشتیم در طول تاریخمون این خود به بخ... خود به خود ما رو نسبت به هر دیگری که از یک گوشه به طرف ما بیاد چه این دیگری که کشور باشه چه این دیگری قریبه باشه چه این دیگری دوستی باشه که اصلا ما نمیشنسیم حالا اومده اظهار دوستی میکنه ما با شک و دودلی با شروع میکنیم کار کردن و برای همینم اصلا خود این ویژگی در منطقه ما به خصوص در کشور ایران به ویژه در شیعه اسلامی ایرانی به صورت تقیه در اومده یعنی به عبارت دیگه شما آنچرا که هستی رو نباید بلافاصله ایام بکنی اگر دیدی در خطر هستین رو بر خودت حفظ باید بکنی این نشون دهنده اینه که این روابط تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که در این منطقه شکل گرفته تاثیر گذاشته که یک ویژگی ها و رفتاری در ما به وجود بیاد که عنوان ویژگی فرهنگی ممکنه اما نکتری که باید فقط توجه داشت و خیلی مهمه قبل از اینکه وارد باز این مسئله ویژگی ها بشن چون واقعا قسمت خیلی خطرناکی از نظر اینکه ما دوچاره تعمیم بخشی های زیادی میتونیم بشیم و متاسفانه در گیر در گیری های بین تجدد و سنتی که ما گرفتار شدیم در صد ساله اخیر و به ویژه در این چرخش های تاریخی که ما پیدا کردیم از دوران قدیم سنت ماندگی تاریخی خودمون میام یک باره در دوران مشروطه سر باز میکنیم و با جهان نوگرایانه غرب مواجه میشیم این خود به خود یک یکی از نقطه های تضاد های حوییتی ما بود بعد از اون شما میبینید که دوران پهلوی آغاز میشه و یک فرهنگ جدیدی بخواد تحسیس بشه فرهنگی که بر میخواد تاریخ ما قبل اسلام ما هویت ما رو شکل بده، فرهنگ ما رو شکل بده باز ما دوباره یک تضاد دیگری رو باش مواجه میشیم یک نقطه عطف دیگری رو و بعد دو انقلاب اسلامی رخ میده برمیگرده اون تاریخ قبل اسلام رو از تاکید میندازه و سعی میکنه عقب بزنه و به جاش هویت اسلامی ما رو در تاریخ دوران اسلامی ما رو میخواد بزرگ بکنه و بهش جلوه بده و ما در هر حال هر این برخوردهای مختلفی که داشتیم این بحث رو دامن زده که فرهنگ اصیل ایرانی چیست و اون چه که من میخوام بگم بسیار عالی اون چیزی که من میخوام بگم قبل از اینکه وارد اون ویژگی ها بشیم حداقل آنچه که گفته شده مورد حداقل بحث قرار بدیم این هستش که این مشخصهای بزرگی رو که ارز کردم خدمتتون مثل مسئله زبان تاریخ ارز بکنم جغرافیا و غیره اینها در همه جای جهان هست کم و بیش و چیز خاصی برای ما نیست نوع گویی ما یک دو میزان پاسخ ما و شکل پاسخ ما است که تعیین میکنه این ویژگی در ما بیشتره و در دیگران کمتره همه جای دنیا مردم غذا میخورن تقریبا همه جای دنیا گوشت وجود داره سیو زمینی وجود داره در یک کشوری گوشت رو به یه گونه میخورن مثلا در کشورهای غربی ما شما دیدیم فرهنگ غذایشون همبرگر دارن خب ما چول کباب داریم کباب داریم این کباب در فرهنگ ما به گونه ای که ما درست میکنیم با کباب لوله مثلا عرب ها متفاوته با با کبابی که اینها به عنوان استک درست میکنن متفاوته ولی همه جا مردم گوش میخورن حالا کدوم یکی از این قالب هایی رو که در جاهای مختلف ویژگی های خاص پیدا میکنه قالب بر جامعه میشه اون ویژگی های فرهنگی میشه ویژگی فرهنگی غذای سنتی ما مثلا آبگوشته و الان هم در این آنجلس ما رستوران‌هایی که می‌خوان خیلی نوستالژی‌های ما رو برگردونن به گذشته حتماً دیزی دارن در واقع اون ویژگی فرهنگ گذشته ما رو برمیگردونن به ما ما رو برمیگردن به دنیایی که از دست دادیم در واقع اینجا به حال با این ویژگی و با این بحث می‌تونم بگم اون چه که اتفاق افتاد از زمان دوران پهلوی مسئله فرهنگ ملی بود و این با دنیای همین که کردم دولت ملت جدید هست شما کشور جدید می‌آفرینی ای زبان مسلطی رو می‌خوای داشته باشی آموزش و هر ورشه یگانه‌ای رو داشته باشی در چنان که در غرب وجود اومد و اینجا بحث فرهنگ ملی مطرح شد این فرهنگ ملی رو در دوران پهلوی که ویژگی های خاص خودش رو داشت اونها میخواستن تاریخ ایران رو بر اساس یک فرهنگ عرفی بریزن و این عرف رو هم بیشتر از ما قبل اسلام میخواستن بگیرن در دوران جمهوری اسلامی سعی شده که اون روها رو همرو پس بزنن و ویژگی‌های دوران اسلامی رو بر بکشن حتی تاریخ حتی با قبل اسلام رو کم رنگ بکنن و مثلا و این باسی بحثی رو در ایران دامن زد به روند بحث فرهنگ ملی که افرادی مثل مثلا آقای چنگیز پهلوان، آقای یوسف نراقی، دکتر مرحوم مصطفی رحیمی، پرویز برجاوند، غلامعلی سیار اینها اومدن این بحث فرهنگ ملی رو بدونی که انتقادی به فرهنگ اسلامی بکنن یا اسلام ایرانی سعی کردن این بحث رو دامن بزنن که به هر حال برای هویت ملی ما برای تاریخ ملی ما این مهم هست که ما یک فرهنگ ملی خودمون رو حفظ بکنیم و این بحث این سری ویژه فرهنگ ما چیست به وجود دارد؟ کسانی که در حوزه اسلامی کار میکنن و امروز هم در حاکمیت جمهوری اسلامی هستن روشنفکرانشون فکرانشون اغلب به عناصر فره، فرهنگ اسلامی تأکید میکنن مجلس ما هم الان مجلس اسلامی هستش عرض کنم که دولت ما یک حکومت اسلامی هستش و هر چیز دیگه ای رو هم بهش لقب صفت اسلامی رو وستن شیمیه اسلامی جامعه شناسی اسلامی و غیر وزاله باید دوجه داشته باشیم که اینها تاکید یک جانبه است که واقعا تشکیل دهنده واقعیت فرهنگی ما نیست فرهنگ ایرانی امروز متأثر از دوران اسلامی ماست نمیشه این کارش کرد و کسانی هم که در خارج از کشور به خصوص در شهری که ما هستیم میبینیم هی تاکید میکنن به گذشته ما قبل اسلامی ما فراموش میکنن که اون ما قبل اسلامی ما همواره جاز فرهنگ ما بوده و اسلام هم قریب تمام این قرن بوده در با آمیخته شده با فرهنگ ایرانی و قرب هم اتفاق عللقم خاست جمهوری اسلامی در این صدصد صد خورده ای سال گذشته زندگی اجتماعی ما رو شکل داده لباس پوشیدن ما رو شکل داده، رفتارهای ما رو شکل داده، دانش, دانش آموزی ما رو دانش فراگیری ما رو نوع برخورد ما رو به دنیا شکل داده و عنااسری که فرهنگ ایرانی رو امروز متاسثر میکنه هر سین اونصرور تاریخی رو باید در نظر بگیریم اسلام عرض کنم که ایرانیتی که به ما قبل ایران برمیگرده و فرهنگ مدرن غربی هر سه اینها شکلی این که به آگاهی‌های بازرگانی بپردازیم من یه سوالی رو می‌پرسم در موقع ها می‌تونید بهش فکر کنید این عناصری که فرمودید به هر جهت یک بازی زمانی و مکانی داره هم فرد هم قبیله هم جامعه بالاخره فرزند زمان خودش هست درست. آیا این اناسوری که مثلا در زمان ساسانیان وجود داشته تا به امروز اینا به صورت مستمر ادامه پیدا کرده یا تغییر کرده این سوال اول منه یعنی در اون بداخلی یک ظرف مکانی میخواد درست. یک ظرف زمانی میخواد و از اونجایی که زمان تغییر میکنه یه مقداری از اون اناسور تغییر میکنه درست. بنابراین این فرهنگ رو ممکنه یکی دیگه هم این که آیا واقعا ما یک فرهنگ تافته جدا بافته هستیم یا نه این بعد از آگهی ها ازتون می‌پرسم. هومن نیسانی و رایان نیسانی دو چهره شناخته شده و موفق جامعه ایرانی افتتاح دیلرشیب های هومن هاندای و هومن جیپ را در لسانجلس باگاهی با می رسانند. و به همین مناسبت فقط و فقط تا پایان این ماه می توانید یک هاندای الانترای 2014 را با فقط ماهی 179 دلار لیز کنید. توجه فرمایید فقط با ماهی 179 دلار یک هاندای الانترای 2014 را لیز کنید. Bed tekster af Homan Hyundai i 4.5 og Manchester, bryg, og af køretningene i din næzir og serviske alie i ma, tilbake tilbake. Telefon 310-228-38-38. 310-228-38-38. Please a Hyundai for $179 plus tax with $1500 down. 24-month closed end lease on approved credit through Hyundai Financial Services based on 12,000 miles per year, 15 cents per mile access, no security deposit. Homan Hyundai. بشنو از می حکایتی دیگر از ریشیابی زربل های فارسی و تکیه های آمیانه برنامه از محمود افهمی یک شنبه ها از ساعت هفت تا هشت صبح پیرمید با افتخار ارائه میدهد شبیه فراموش نشدنی با سمی بیگی سمی بیگی من یه دیوانم در شد. تو چه خوبی حق و و در کلاب نوکیا الایو ایرانی ای جونم عمرم نفس نمی همه که چه Powered by Koji Radio Sponsored by Welcome back to the Dog Show. Up next, we have Satchmo. Satchmo is a member of the Shelter Pet Group. That's right, a group known especially for their couch snuggling, ball chasing, face licking, tail wagging, backyard hanging, and of course, companionship. And what breed would you say Satchmo is? I'd have to go with maybe a lavish terrier hound chihuahua-looking kind of mix. Tremendous dog. Mm -hmm. I'd also like to point out Satchmo's coloring a white, gray, brown, black brindle. Simply marvelous. You know, it's such a treat to watch a dog like this. Now, let's see him in action. Look how he makes eye contact with his person. That's actually known as the treat stare. How intuitive. And now he appears to be excitedly turning in circles. Ah, oh, the happy dance, so common with this group. And finally, the loving face lick. It's great how he just gets in there and well licks. Fantastic. But really, the best way to know an amazing shelter pet like Satchmer is to meet one. Visit the shelterpetproject.org today. Adopt. Brought to you by Maddie's Fund, the Humane Society of the United States and the Ad Council. آموزشگاه موسیقی کانون غیر انتفاعی هنر ایران ارائه دهنده موسیقی با کیفیت برتر. آموزش کلیه سازهای ایرانی از کار آموزان و استادان برجسته بدون محدودیت سنی. آموزش آواز با استاد سیامک شجریان، پیانو و ویولن کیاوش نورایی، سنتور، کروش زولانی، کمانچه، تنبک و دف میثاق اسحاقی، تار و سه‌تار متین اسحاقی، نی، پیانو و موسیقی کودکان پریسا دانشور برای یادگیری موسیقی با شیوه صحیح علمی و دانشگاهی در دو منطقه ولی و ویسفود با شماریم 310 477 41, 41 41 تماس بگیریم 310 477 41 41 از یونیورسال سیتی کالیفورنیا، اینجا کئی 670 ای ام سی میولی، دانش برنامه ای از انجمن استادان و, و پشوشگران ایرانی. با عرض سلام مجدد علی اکبری هستم در خدمت جناب دکتر علی اکبر مهدی استاد و محقق جامعه شناسی در ارتباط با فرهنگ ایران صحبتی داشتیم. های دکتر قبل از اینکه وارد آگهی ها بشیم از جناب علی صحبت سوالی داشتم. بله بله. قول شادروان شاهرخ مسکو تاریخ و فرهنگ در ظرف جغرافیا محقق میشه. درست. یعنی هر دو احتیاج به یه ظرف مکان داره و ظرف زمان و هر دوی اینها در گستره بزرگ تاریخ ایران تغییر کرده است جغرافی های ایران از نظر وسطش عرض می کنم کوچیک و بزرگ شدن درست. چه زمان حاکم درست. آیا گس هستی وجود پیدا میکنه در این بازه زمانی یا همین جور اون ادامه اون فرهنگ های قدیمی تدریجا یا به صورت دوآیری که بعضی جا تداخل میکنه و به ما واق میرسه ببینید اغلب مورخین ایرانی موافق هستن و من شخصا خودم سه ویژگی رو خیلی مشخصا به عنوان ویژگی های فرهنگی ایران بدونی که مثلا وارد جزییاتش بشیم هست از نظر تاریخی و تداوم تاریخی شما مطرح کردید یکی زبان فارسی زبان فارسی و اتباقه آقای دکتر زندیاد مسکوب میگفتند که زبان باعث تداوم فرهنگی ما شده ایشون یکی از سه تا نظریه هایی هستن ففرادی هستن که سه نظریه رو در واقع دارن یک دکتر مسکوب هست که معتقد تداوم فرهنگی ایران وابسته به زبان فارسی بوده این پیرویانا زیادی داره دسته دیگر کسانی هستن که فکر میکنن که ویژگی های خاص شخصیتی و شخصیت ها و یا ساختار سیاسی در جامعه ما بوده. بسیاری کسانی که امروز به عنوان میگن سلطنت طلب هستند مثلا معتقدن خب واقعیت هم داره که تاریخ ما کمابیش تاریخی سلطنتی بوده. یعنی ساختار فرمانروایی و حکومت و روابط سیاسی در جامعه ما همواره یک سازمان سلطنتی بوده. شخص تیوی مثل ارز بکنم که دیگری ازش مثل آقای هانری کاربون اون تاکیدش رو روی مسئله اندیشه فلسفی میذاره نگاه فلسفی افراد رو معیار تداوم فرهنگ ایران میدونه و معتقد هستش که فلسفه ایرانی دید ایرانی اشراق ایرانی و به خصوص تاکید به سرخوردی داره معتقد است این اصلا هم در فرهنگ ما قبل اسلام به خصوص بوده و این سرخوردی هستش که میتونه این انتقال بده اون اندیشه ایرانی رو Yeah. <laughs> به دنیای اسلام به صورت شیعی که میاد و به عنوان عرفان و فرهنگ ایرانی هست و در واقع اون اتصال رو برقرار میکنه کسانی هستند که خب مثل دکتر سجاد توطوایی که اخیراً خب من تو ایران افکارشون خیلی بحث‌انگیز بوده و هست ایشون روی اندیشه سیاسی ما تاکید داره ایشون معتقد هستند اون ایده ایران شهری در ایران همواره یک مفهوم بزرگی بوده که در کتاب خاجنوزا ملکشون مطرح میکنن اینا همه باعث در واقع نوع به سابب قالبیست که درش تداوم رو میبینن من همطور که عرض کردم جغرافیای ما تقریبا ثابت بوده من قبول دارم که ایران بزرگ و کوچک شده ما اولا سیطره فرهنگیمون خیلی بیشتر از اون جغرافیایی است که امروز درش هستیم ما ازبکستان تاجیکستان و تا پای هند هم رفتیم و اونا سیطره فرهنگی ما خیلی وسیع‌تر بود ولی هنوز ما اینا نو اینا در تمام این یکی از مشکلاتی که دنیای جدید برای ما به وجود ورد و بدون که خودمونم بدونیم و البته دیگر کشورها هم در این مساله شدن بعضا کسانی که این تاریخ ما رو نداشتن و جغرافی های ما رو نداشتن براشون خوب شد کشوری به نام کویت اصلا وجود نداشت و خود عراق با قدمت تاریخی عظیمی که داره به عنوان عراق شناخته نمی‌شد اردن که اصلا ساختگی کامل هستش برای این کشورا خوب بود که وقتی که اومدن به عنوان دولت ملت جدید تعریفشون کردن تاکیدشون رو بذارن روی میگم ما کشور عرب هستیم مثلا ما ما کشوری بودیم زبان فارسی واقعا سیطره خیلی وسیعی داشت و ما این زبان فارسی رو به عنوان زبان ملی خودمون که اعلام کردیم در واقع خودمون از اونها از اون سیطره فرهنگی که بودیم یه مقدار جدا کردیم امروز تازه در 20 سال گذشته هستش که بعضی از محققین ایرانی ما و بعدم ایران شناسان ما اومدن راجع به پرژنایت ورد صحبت میکنن یعنی نه تنها فقط پرژن بلکه پرژنایت وولد. بیشتر جایی که سیتره فارسی تا اونجا میره و الان در اون انجامن پرژنایتی که درست شده ارزم با شما که اونجا ببینیم که محققین اه اه تمام کشور ارمنستان هستند تاجیکستان هستند ازبکستان هستند های سالان سال، سالگرشون در در هند وستان بوده خود افغانستان بوده و غیره بنابراین تداوم فرهنگ ما تا اون حدی که من از این سه نظریه هم که بگذاریم بر این اساس که ما زبان فارسی رو همواره داشتیم ایرانی که امروز مادرش زندگی میکنیم کماوش مرکزیت جغرافیایی خودش رو برای ما حفظ کرده یعنی یه پایگاه اصلی بوده که ما هیچ وقت به اون صورت ازش بیرون رانده نشدیم به اون صورت مساله تاریخ مشترکی است که ما با هم داشتیم علاوه بر تاریخ بسیار پیچیده و پر فراز و نشیبی که داشتیم و زبان فارسی هم که خدمتون ارشد کردم اما با توجه به همه اینها ایران یک کشوری م... آ... کسی جمعیت هست کسی فرهنگ هست کسی قوم هست این اقوام هر کدوم خورده فرهنگ های خودشون رو دارن این خورده فرهنگ ها هم زیر پرچمه و چتر بزرگتر امروزین مسئله فرهنگ ایرانی همونطور که ارز کردم در زمان قدیم ما قبل دولت ملت افراد در قبیله ها روسته های خودشون شهرستان خودشون حد اکثر در محله وسیه به من منطقه میش... آشنایی داشتن کسی از این مرز ها خارج نمی وقتی ما وارد دنیا و یه جدید شدیم مفاهیم فرهنگ ملی از نظر سیاسی معنی ممکنه پیدا بکنه ولی از نظر واقعا رفتار اجتماعی و مدنیت اجتماعی دیگه بی معنی داره میشه چرا که انقلاب ارتباطات فرهنگ رو جهانی کرده فرهنگ اگر پاسخ اون پاسخ های مشخص یک مردم در محل مشخص به سلسلی نیاز های مشخص باشه امروز ارتباطات و دنیای رسانه ها ویجگ، این ویژگی ها را چنان در سطح جهان پخش میکنه که همه از همه ما متاثریم. شما هر جای ایران برید امروز میبینید پیتزا فروشی باز شده میبینید الان در این آمریکایی که من اومدم وقت وخ... از چل سال پیشم که ما اوم... اینجا اومده بودیم کما بیش هر روستای اینجا من میرفتم اران چینی بود دنی به عبارت دیگه این غذای چینی جزئی از فرهنگ و قضا... فرهنگ غذایی مردم آمریکا شد و الان من می‌بینید که الان من تو کار سردم خدمتون دانشگاهی نیست که شما برید یا فروشگاهی که غذا ت... ت... ت... به طبقات متوسط به بالا می‌فروشه نیست شما برید که حمص درش نباشه چرا این این اه... ایتم یا این مورد مواد مشخص یک م... قضای مشخص از یک فرهنگی به فرهنگی دیگر میاد. فرهنگ هایی که در درون خودشون بخوان خالص بمونن مال دنیای قدیم بودن. فرهنگ هایی بودن که دور افتاده بودن و عملا هم از بین میرن. فرهنگ های پویا و زنده فرهنگ هایی بودن که امتزاج فرهنگی و داوودستات فرهنگی با دنیاهایی دیگر داشتن خسایس و ویژگی های جدید و بهتر و شیوه های جدیدتر رو که با تکنولوژی جدید با علم جدید با دانش جدید به وجود میاد میگرفتن آنچه هم که مورد پسندشون نبود دفع میکردن آنچه را که مورد تاییدشون بود برای ویژگی بخشیدن به خودشون سعی میکنن حفظ بکنن تا به طور آخرین بخش آگهی های بازرگانی رسیدیم اگر اجازه بفرمایید از این قسمت عبور کنیم و خدمتتون برگردیم det er en af de største ting, der er blevet gjort. Apa Nahkana, Pahobagrakan, Keruciana, Terre Insurance Company, har fortjent 800 millioner til at få fat i en million dollars til at få fat i en i til at få eksperimentet ու må ikke nok være sådan at skrædder det, hvorfor? Hvor er det skabt? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad Legendary composer, performer, and the world's true global artist, Yanni. And his renowned orchestra will bring the world tour to Nokia Theater LA Live, Friday, September 19th. Spend an unforgettable evening with Yanni as he performs audience favorites. Tickets on sale now at AXS.com, Nokia Theater Box Office, or charge by phone at 888-929-7849. Yanni. Produced by AG Live. بس دیگه مردم اقدر خور و پفت میکنی برو دکتر کدوم دکتر برو به دکتر سنور برای درمان اسنورینگ و سلیپ اپنیا که بهترین متخصصین این کار هستن و اکثر بیمهارم قبول میکنن کجا هستند از سندیگو تا آکسنورد شعبه دارن تلفن کن به 877 دکتر سنور که میشه 877 377 66 73 یا سری بزن به وبسایت سایت دکتر دش و بعد میبینی که هم تو بهتر میخوابی هم من Paid for by شیخ سادو افتاده لس آنجلس. دانش برنامه ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایران. دار میگردیم و دنباله بحثمون رو با جناب دکتر علی اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه در ارتباط با فرهنگ ایران ادامه میدیم. آقای دکتر معمولا ما در 12 دقیقه آخر خطوط رو باز می‌کنیم ولی من قبل از اینکه این خطوط رو باز کنیم و از هموطنان بخوایم اگر سوالی داشتن مطرح کنن دو سوال دارم اگر کوتاه جواب بفرمایید یکی که ویژگی های فرهنگ ما چی هست؟ ویشگی های فرهنگی رو من فقط بازی اختاری رو بدم از قبل این استش که من ابتداعا شاید بعد میگفتم و اون این هستش که همیشه من در درس جامعه شناسی نکته رو خیلی تأکید روش دارم برای مفهوم فرهنگ و اون تفاوت بین فرهنگ ایدئال و فرهنگ واقعی است فرهنگ ایندال بود ارزشی فرهنگ هاست یعنی آنچه که ما دوست داریم داشته باشیم چیزی که در واقع دروکایم به عنوان وجدان اجتماعی جامعه میگفت ما داریم به عبارت دیگه مثلا راستگویی بسیار چیز خوبیست است دروغ بد است این یک ویژگی ارزشی فرهنگی است که در بسیاری فرهنگ ها همه اغلب فرهنگام هم دارا ما هم تنها نیستیم خب آیا در واقع ما آیا دروغ نمیگیم اصلا واقعیت نشده که فرهنگ ما فرهنگ واقعی ما مجموعی دروغات توش داره اصلا خود در سراسر دنیا به نام دروغ سفید و دروغ غیر سفید به وجود اومده این نشون میده که هیچ جای دنیا فرهنگ واقعی لزوما با فرهنگ ایدهال یکسان نیست بلکه فاصله داره اون چه که فرهنگ ها رو در واقع تا حدی به میزانی فرهنگ های مستحکمی میکنه که نشون میده در واقع کمتر دچار تا های فرهنگ ی نسبت به فرهنگ خوب مفاهیم خودشون ارزش‌های خودشون فاصله این واقعیت با ایدئال هستش تا چه میزانی آنچه چرو که ای که میگه من این رو میپسندم و به اجرا می‌گذاره چقدر این مسئله جدی است مثلا در فرهنگ عرب هنوز به طور مشخص در عراق رو دارم صحبت میکنم فرهنگ قبیله‌ای بسیار قوی است مشکلی که آمریکاییان داشتن وقتی رفتن اونجا خب اینا اتفاقاتی افتاده بود و اگر یاتون باشه یک چند نفر آدمی بی کشته شده بودن خب اینها قبیله اونها قوم اونها انتقام رو باید از آمریکایی می‌گرفتن فرقی هم نمی‌کرد چه فرقی هست این مسئله که اینقدر این مسئله فاصله مص... مساله قوم‌گرایی و قبیله‌گرایی قوی بود که فاصله بین ایدئال و واقعیتش وجود نداشت زیاد حالا برگردیم با اون ویژگی اگر با این تمایز رو در نظر بگیریم و اینکه ما همیشه راجم میزان و قال بودن یک الگو داریم صحبت می کنیم. اونچه که تابح حال گفته شده از ویژگی های فرنگی ما یکی مسئله ش... مصله شیعه است ایرانیان در مجموع در طول تاریخ بعد از اسلامشون دین به هر حال همواره یک نقش اساسی در فرهنگ ما داشته چه قبل از اسلام که دین زرتشتی بوده چه بعد از اسلام هم که عملا دینی نیست که قبلا چهره شیعیه خودش مشخص نبود ولی دین همواره به عنوان یک الگوی و منبع و مرجع رفتاری برای ما بوده که به طور مشخص از دوران بخش صفویه به این طرف شکل شیعی میگیره نکته دیگه بوده استورهی تاریخ ما قبل اسلام ماست که ما در با مسئله فردوسی، شاه، شاهنامه و تمام ویژگی ها و اسطوره هایی که عملا نوروز ما رو شکل داده مهرگان ما رو شکل داده، تیرگان ما رو شکل داده، سوری ما رو شکل داده یعنی این همواره در طول تاریخ ما تداوم یافته با کم و زیاد در جاهای مختلف به های مختلف مثلا مهرگان در های مختلف ایران به انواع مختلف داره جشن گرفته میشه خود نوروز همچنین. بعد نکته دیگر تأکیدی است که برای مسئله خانواده، قبیله و قومیت در منطقه ما زیاد بوده. این مسئله در واقع همه جای دنیا هست. اونچه که به هر حال ایرانیان هم مثل بسیاری کشورهای دیگر مدعی هستند که تاکید بر خانواده خیلی زیاد است. این رو من میتونم با این ویژگی بیارم که فرهنگ قالب اجتماعی ما فرهنگ فردگرانه نبوده. به طور مسلط بلکه بیشتر فرهنگ جمعگرا بوده و هم نوز هم به عنوان یک فرهنگ جمعگرا میمونه الگوها و قالب‌های جمعی بیشتر تعیین کننده ی هویت ما رفتار ما ازدواج‌های ما و غیر ازدواج بوده یعنی ما اگه بچه ها میخواست ازدواج بکنه فقط اون کسی که دوست داشته کافی نبوده بلکه این مهم بوده که چه خانواده میاد به طبقه ما میخوره نمیخوره و غیر ا کنید دیگه نکته هم باد سیاسی عرض کرده بودم قبلا دیگران مطرح کردن ئله پدر سالاری و پدر شاهی است در فرهنگ ما پدر شاهی به مفهوم این که ما همواره بزرگان خودمون مسلط بودن در جامعه ما در خانواده ما و فرمانشون حرفشون امروز هم ببینید ولایت فقیق در واقع همون ساختار پدر سالاری است که در سلطنت تکرار می‌شد بهناال به صورتشییشه به صورت اسلامیش دینیش هست ولی ساختار پدر سالارانه فرهنگ در روابط شخصی ما هم کمابیش هست بزرگ سالاری و غیر وجود داره نکته دیگر بود عاطفی ما هستیم چیزی باز ویژه برای فرهنگ ما تنها نیست ولی خب به هر حال واقعیتی هستش که ایرانیان آنها دقلا جای دیگه هم ممکنه باشه ما نباید فکر کنیم ما فقط ایرانی ها هستیم ما مردمی هستیم که شعر و فرهنگ و عرفان و بر عاطفی زندگی و نگاه عاطفی به زندگی برمون خیلی اهمیت داره و به خصوص فرهنگ شعری در ما بسیار غالب و زیاد هست ما بسیار مسئله ها داریم و ازش استفاده می کنیم تدبیر جمعی برامون خیلی مهم هستش و از اینها استفاده می کنیم به طور مشخص این را در مقابل باید بذارید در اقلانیت جدیدی که عرفی که در دنیای غرب به وجود برده در واقع در فرهنگ های غربی هم بسا بعضا این چنین ویژگی رو داشتن ولی در مقابل مدرن گرایی و نوگرایی جدید در حساب تمدن جدید اینها رو کم کم این از دست دادن و با اقلانیت سنتی با اقلانیت جدید یا بعضا میگن اقلانیت علمی خودشون رو تطبیق دادن ما هنوز کمابیش بیش اون عنصر عاطفیمون کم نشده ما اقلانیت عاطفیمون هم رو حفظ داریم میکنیم در واقع تقدیرگرای یکی از چیزهایی که در نه تنها ایران بلکه در کل منطقه خاورمیانه میانه بیشتر هم میره زیر قالب فرهنگ دینی ما دیدگاه دینی ما اون ویژگی دین پذیری و دین خویی که البته مورد بحث هست های فرهنگ ایران دین خو هست و غیر وزالک وارد اون بحث هم نمیشیم آقای دوستار فره... نکته دیگری که خیلی فرهنگ ایرانیان بهش خودشون تاکید میکنن مهمان نوازی ماست ما مهمان نواز هستیم نسبت به شاید کسان دیگر وقشای دیگر جهان که ممکنه کمتر مهمان نواز باشن و دیگر کشورها هم هستند نکته دیگری که و که زیاد شنیدیم هم از کردم قبلا توطه اندیشی ما در دوران ماسر هست و بالاخره در نهایت نکته دیگری رو که زیاد ما باید بهش تاکید بکنیم اون هستش که حس اخیرا هم در دوران به خصوص مقابله ای که با جمهوری اسلامی و فرهنگی که میخواد غالب بکنه گذشته شده این هستش که ما خیلی در فرهنگ ایرانی تاکید به وظایف افراد میکنیم تا به حقوق افراد حقوق افراد همیشه هم زیر سایه وظایف گم میشه و همین همینم هستش که فرهنگ ما فردیت درش اونچنان اهمیت پیدا نکرده وقتی شما از صحبت از حقوق فردی میکنید در واقع حقوق جمعی رو جنبه ثانوی بهش میدید اون وظیفه اجتماعی اول بحث اگزیستانسیالیستی هستش دیگه بحث فرهنگ وجودی است که من قبل از اینکه یک جامعه شناس باشم قبل از اینکه پسر خوبی باشم قبل از این که شهروند خوبی شم من باید خودم باشم من باید وجود داشته باشم بعض حقوق خودم باید استفاده بکنم حق حیات باید داشته باشم و این مفهوم هم برای ما همواره در فرهنگ ما بود عرض کردم یه مق داشتم برمیگرده به طور مشخص آقای سروش عبدالکریم سروش خیلی در مقابل انتقادی که نسبت به حاکمیت فعلی داشته همواره اینو رو تاکید کرده که روحانیت ما همواره روی وظایف صحبت میکنه و کمتر صحبت از حقوقی رو که خود اسلام هم حتی برای افراد میشن ناسه کمتر بهش تأکید میکنه اینا بعضی از ویژگی است که در فرهنگ ما راجبش صحبت شده آی دکتر ما یا فرهنگی ایرانی که داریم میتونیم بگیم ما بالاترین فرهنگی اینا هیچ کشوری میتونه همچین نا. چیزی رو بگه که فرهنگ ما برترینه آری و نه نه به این مفهوم که در بود عرضش های عاطفی و عرضش های اخلاقی کمتر میشه چنین چیزی رو مطرح کرد اما فرهنگ ما رو با معیارهای مشخص می توان برتر و کمترش را ببینید در قرد اگر از زاویه علم و رفتار علمی و برخورد علمی با مسائل باشه قادتا خیلی مشخص هم از ثابت کردنش هم ساده است خب میتونید بگید که فرهنگ برتری دارن ما در کتابخونی فرهنگمون خیلی وضعش خرابه در قرد خب این مسئله خیلی بهتر هستش ما در روزخونی فرهنگمون خیلی قوی هستش در اب عده هستش که ضعیف هستیم به عبارت دیگه برتری رو بهتری رو فقط در رابطه با میارهای مشخصی میشود صحبتشو کرد و اونم بیشتر در زاویه کمتر و بیشتر من زیاد به اون ناسیونالیسم فرهنگی که ما رو به اونجا بکشونه که ما بگیم که قزای ما بهترینه در دنیا این واقعا یک مفاهیم غلطی است که ما اگه با خودمون هم بکنیم جز به نجات پرستی نمی انجامه. در بسیاری از ملت ها این هست من قطعا زیبایی میفتم در آخر کتاب گرشاز نامه اسدی که گرشاز شاه میره به هندوستان مهرات شاه هند دعوتش میکنه که شگفتی های هند ببینه و یه ملاحی رو میذاره اینه به جاهای مختلف گیاهان مختلف درختان مختلف آداب مختلف یه جزیری میبره که دماغ اکثر مردمش نوکش چیده شده بوده این وقتی میرون اونجا بسیار دلش میسیده برای حتی بچه هایی رو میبینه که اینا دماغشون نک نداره و میگه کدوم بیرحمی به اینجا حمله کرده و همچی کاری کرده وقتی اون ملاح که آدم دانایی بوده بهش میگه نه عزیزم اینجا فرهنگش اینطوری که این رومیار زیبایی میدونه و با این بیت تمام میکنه میگه شنیدم ز دانای فرهنگ دوست که زی هرکس این شهرش نکوست. نکوست ممنونم جناب دکتر امیدوارم در برنامه‌های آینده هم در خدمت شما باشه خیلی ممنون تشکر مارس دانش برنامه‌ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی